اللهم صل على محمد و آلم سيد الكوناي، عبدالقاسم المصطفى محمد. اللهم صلّ على محمد وآل محمد عجل فرجهم وفرجنا بزور ونعاس وعلّم الطيبين القادرين المعصومين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغاونوا على البر والتقوى ولا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِذْحِ وَالْعَدْوَانِ صدفت مصدف الله الْعَلِيُّ العظيم السلام عليك يا باب رب وَعَلَى وعلى الَّتِي التي علیکم السلام الله علیه و آله و محمد و و نهادهای دینی مراکز علمی و فرهنگی به عنوان ساخت و ساز جامعه سالم اسلامی باید دقت کنند و توجه داشته باشند که برای سازش یک جامعه سالم و صحیح چه اصول لازم هست و در کار هست ما مشاهده میکنیم میبینیم چون که امور مشترک سود و زیان و مسائل خوشی و مسائل لاغوی مشترک تعداد از مردم در یک سرزمین و در یک زمان همه اینها وقتی با هم به وجود می آید یک جامعه را تشکیل می دهند. حالا برای این که یک جامعه بی موفقیت موفقیتهای خوب را به دست بیارد از فرصتهایشان بهترین استفاده را برده باشند برای یک جامعه سالم چه اصول لازم هست برای یک جامعه موفق چه موارد لازم هست وقتی ما در قرآن کریم دقت میکنیم قرآن کریم حداقل سه اصل رو به عنوان جامعه سالم برمیشمارد تا یک جامعه جامعه سالم شده بیتواند اولین اصلی از این اصول الفت و یگانگی ایمانی است آنجایی که خداوند متعال می فرماید و به حبل الله جمیع و لا شما بر اسمان وحدت و الفت و یگانگی چند بزنید یعنی حتی خود یک مرکز دینی تا ایده از افراد کنار هم نیایند و دست به دست هم ندهند یک مرکز به وجود نمی آید یک نهاد دینی به وجود نمی آید چه برسد اینکه یک جامعه بزرگ تشکیل بشود بنابراین این مساله اتحاد و مسئله دست دادن به هم دیگر یکی از اصول است که یک جامعه باید داشته باشد تا سالم بماند. بر این اساس اگر جامعه شیعی ما خدای نفست بینشان اتحاد نباشد جامعه شیعی تشکیل شده نمیتواند و جامعه از هم پاشیده وقتی از هم پاشیده شد تارمار خواهد شد دوم این اصلیه که لازم است یک جامعه باید از آن برخوردار باشد و هر تجمعی باید از آن برخوردار باشد فرق نمی شود دسته سینه‌زنی باشد هیئت دینی باشد مرکز قرآنی باشد حوض علمیه باشد دانشگاه و مدرسه و مکتب باشد و هر گروه سازمان فرهنگی و حتی جامعه باشد دومن اصلی که لازم است از نظر قرآن تا یک مجموعه سالم بماند مسئله خودداری افراد و اعضای آن از شرارتها و بدیها و آزار دادن نسبت به هم دیگر هست وقتی در یک نهاد دینی خدای نخواستا یکی از افراد فرد دیگرشون را آزار دهند این نهاد از بین خواهد رفت وقتی یک هیئت سینزنی و هیئت عزاداری یک جامعه فرد فرد دیگرشان را اذیت کند اون جامعه از بین خواهد رفت قرآن میفرماید: ان الله یا بالعدل والاحسان خداوند متعال امر میفرماید که شما بر اساس عدالت رفتار کنید ان الله یا خداوند امر می فرماید بالعدل والاحسان به با عدالت و احسان یعنی نیکی مردم نه تنها نسبت به همدیگر دیگر نباید بی‌عدالتی و ظلم کنند بلکه احسان کنند بلکه خوبی کنند وقتی نهادها از عدالت و بالاتر از عدالت احسان را در درون خودشان داشت این نهاد موفق است وقتی یک جامعه بالاتر از عدالت احسان رو در بین خودشان داشت این جامعه جامعه سالم هست پس این اصل دوم و سهوم اصلی که برای سلامت یک جامعه خیلی مهم هست کمک کردن بر خیر و حق بر خیر و حق هست خداوند متعال می فرماید و تعاونه علی البر و تقوه شما بر بیر خوبی ها و تقوه معاونت کنید معاونت یعنی همکاری شما بر خوبی ها همکاری کنید ولا تعاونه علی الاسم و العدوان ولی بر اسم و گناه و عدوان همکاری نکنید بر این اساس ما به انوان کسانی که در مرکز دینی آمده ایم وظیفه داریم هر جای خوبی از آن حمایت کنیم و هر جای بدی است آن را مورد سرزنش قرار دهیم و آن را باید برداریم چه در درون یک نهاد هست چه در درون یک جامعه هست و تعاون علی علالبر و تپا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان القدوان ها وقتی تشکیل می شوند نباید در امور ناشایسته ها مسابقه بیاندازند، بلکه فلیتنافس المتنافسون کسانی که نفس نفس میکشند بر امور خیر و حق نفس بکشند بر امور مسلحت ها تلاش کنند. بر این اساس کار تشکلاتی یکی از اصول است برای موفقیت نهادهای دینی و مراکز اسلامی و مراکز دینی مراکز قرآنی و دینی و حیعتهای فرهنگی و مذهبی بیدانند کار تشکلاتی موحد یک پارچه سازمان یافتند و کاری که درون اون کار خوبی هاست احسان است، معاونت و برخیر و حق هست این نهاد نهاد است که موفق است. اما اگر جامعه چون این چیزی نداشته باشد این جامعه از هم پاشیده است. ما وقت در واقعه تربلا نگاه کنیم اونجا میبینیم مردم بر خیر و حق مقابنت نمی کردن. بلکه بر اسم و گناه هم پار کردند. در اونجا عدالت وجود نداشت احسان وجود نداشت و اونجا اتحاد وجود نداشت اما علیه و وقتی از مدینه حرکت کرد چه فرمود؟ فرمود کسانی که میخواهد خون دلشان را در راه خدا بعضل کند همراه ما حرکت کند که فردا خروج خواهیم نمود سحگاهان از مدینه حرکت خواهیم کرد یکی از نماد جامعه آشرایی و نماد واقعی کربلا عدالت پیشگی و ظلمستیزی است اینجاست که ان الله یأمر بالعدل الاحسان. اگر جامعه عدالت پیش نباشد همان طوری که نواده پیام پیامبر خدا را شهید کردن از بوی ظلم هم مردم شهید خواهند شد و مردم از بین خواهد رفت و خونهای مردم به ناحق ریخته خواهد شد اگر کمک بر خیر و حق نباشد چون این چیزی می شود در واقع کربلا گفتن یک بام و دو هوا بوده است چگونه امام علیه السلام در شب آشورا اصحابش رو جمع میکند میفرماید که از تاریکی شب استفاده کنید و بروید من حسین حق بیعتم را از گردن شما برداشتند بروید و جانتون رو سالم نگه دارید ولی وقت صبح آشورا می شود اما علیه سلام داد می زند حل من, یا حل من ناصر ینسرونی یا هل من ناصر و ینسرونی آیا کسی هست که حسین رو یاری کند؟ این چگونه هست که در شب آشرا می بروید؟ ولی در صبح آشورا میگوید آیا کسی هست که حسین رو یاری کند چون کسانی که خیر و حق رو یاری نمی کند باید از بین اصحاب حسین برود ولی فردای آشورا کسانی که خوبان هست و در دستگاه حسینی نیست و در صف یاران مسن علیهالی وسلام نیست باید بیایند و موفق بشوند اینگونه هست پس این سه اصل رو باید در نظر داشت اصل وحدت، اصل عدالت پیشگی و اصل کمک برخیر و هم از لوازم کار تشکلاتی و جامعه سالم هست از خداوند مهربان امیدواریم که این اصول را در جامعه خشبی توانیم عملی کنیم و بر این اساس یک جامعه موفق و سالم بگردم تا زمین ساز ظهور امام عصر علیه السلاط و السلام با وجود بیاید و انجام بشود همون آقا و مولایی که میفرماید نسبت به عضا و مصیبت بزرگ و عظیم جدش حسین میفرماید من من بجای عشق و آب دیدگان خون گریه می کنم برای حضرت آقا و مولا باید تسلیت گفت و باید گفت آجرت الله یا وقیت الله فی مصیبت جدک الحسین. خداوند مهربان برای همگان ما و شما این توفیقات را عنایت و و حرمت الصلاوات بر محمد و آل محمد اللهم علی <سلم> و آل محمد یا يا من السلام المنوه عبد مو بقين وبقي الليل والنهار يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يداي حجاتنا يا وجيها ها هوا بسیار گرم بود کاروان مجبور شدن اندکه استراحت کنند اندکه صبر کنند نانجیبان برایشان خیمه استوار کردن، اما اهل و بیت پیانبر در دل آفتاب در هوای گرد حضرت زینب کبرا آمد کنار امام زمانش کنار امام سجاد در دستش باد بزن بود همین تور داشت باد میزد تا امام سجاد نشود هوای گر به بدن نازنینش آسیبیه برساند امام سجاد و اهل و بیت از شدت گرمه شدت تشنگی چندت گرسنگی نگید داشت سزده های را متحمل می زینب برادر زادش ارزه کرد برادر زاده بر از سخت است تو بر این حالت ببیند اما نتواند برای کار رو انجام دهد هر یکی از احنوباید دنبال سایه بودن زینب و امام سجاد خودشان رو به سایه شطور آورده بودن دختر حسین فاطمه و زکینه حمه حجل بودن نقل میکنند سکینه حسینگ داشت دنبال سایه میگشت درخت را پیدا کرد رب زر سایه این درخت اینجا خاک را جمع کرد بادشه برایش درست کرد همینطور تور بخت داشت هوا گرم بود سرش رو گذاشت بالای این خوابش دور سکینه یا حسین در خواب بود کاروان حرکت کرد فاتمه بشو بشتربان گفت خوهرم سکینه هم من مناس ولی فیلن من بدون خوهرم نمیرم شتربان توجه نکن فاتمه گفت ساربان بخدا من بدون خوهرم نمیرم شطربان گفت خواهد خویاس فاطمه گفت من نمیدونم شطربان دلشون سزا جد سکینه سکینه بیا سوار شطرشان و کبرمی ولی سکینه خبر نبود. فاطمه هر چه بدون خواهر نمیروا سطور باب تو را جون شودن سکینه بر اثر شدت گرما از خواب بولان شد بیدار شد دل کاروان اهل به حرکت کردنش اما جون سکینه حرکت کرد قهر شوقی حرکت کرد یا سکینه صدا می زند جن جان فاطمه مگر هم محمل ده بودیم شما رفتیم خوهران سکینه را درد در دل بیابان باقای بره بزوشنید سکینه داشت سنت کاره و حرکت میکرد اذا نديا بو و درواز باعبای شدور به